شیطان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب صل الله علی محمد و آله و خاهرین المعصولین که محل کلام در بود بحث کردیم محروم شیف انسالی قدرت الله نفسه تو این بحث مکاسب فعلا دو جهت رو بررسی میکنه یکی جواز انتفاع و علم جواز انتفاع به یکی هم مسئله یه بی که برای توصیل بحث و یه مقداری زمینه ها سابق بحث رو بررسی کردیم و دیروز اجمالا بعضی از روایات رو شروع کردیم که باز فراموشی ما دستال قبل از که قروض روایت وارد در روایت شیعه بشیم در روایت اهل بیت بشیم یه نقطه ای رو من عرض بفرم چون این نقطه مفیله کاملا محله استفاده ما در بحث های گذشته ارز کردیم روایات اهل سنت متعارض هم. و عمده یه تا آرزشون در جلد در غیر جلد میت مثل قصدخان و پشم و مو و اینها اونها دلیل ندارن یعنی روایت ندارن که مثلا موی او یا پشم او باید نیست اون کسانی که قائل شدن میشه به پشم یا به مو انتفاع کرد بیشتر از راه ملازمه باید شدن ملازم به این که اگر مثلا پوست با دباقی پاک بشه پس پشم هم پاک میشه به طبعش ما این رو گاهی در فد در فدر شیعه خودمون گاهی ازش تعدیر به طبعیت میکنی ما هم تعبیر به ملازمه می کنیم هر دو آمده این تبعیت غیر از اون تبعیت بچه کافر نساز کافر یا بچه مسلمان نساده مسلمان یه تبعیت این اینم گاهی ازش تعبیر کردن علمای ما به اسلاق مقامی یا تبعیت یا ملازمه مثلا این گفتن اگر ما در دیگی اصیر انبی آب انگور ریختیم و این جوشی این نجس میشه تا به سولوتین بشه خب طبعا بخواد ذوب بشه آب میاد پایین چهدی آب آبانگور میاد پایین این اون اطراف به اصطلاح دیگ به خاطر ملاقات با اون اصیر نجس اون هم میشن دیگه خب وقتی که ظاهر رسولسین شد مقدار دو سوه از خود جداره دیگ با نجس باشه در این نجس لیکن چون در روایات نیامده که اون رو تکیر بکن حالا نزیش تحبیر میکنند داره اوقات به طبعیت یعنی که. اصیر پات میشه دیگه هم به طبع پات میشه یا گاهی تعبیر میکنم به ملازمه گاهی تعبیر میکنم به اطلاق مقامی من همین اخیزان توضیح دادم قدم های اصحاب مثل شبلومه گاهی تعبیر میکنه به اطلاق عملا به اطلاق متأخرین اصولی های ما شیعیان ما این در اصلاح هر سنت هم میتونم میگن عملا به اطلاق اینا آمدن بین این اطلاق با اون اطلاق متعارف گذاشتن. یکی شد اطلاق لحظی یکی شد اطلاق مقامی اطلاق لحظی مثل الله البی که عنوان رفته روی مطلق طبیعیه بی طبیعیه طبیعت من دونه پس مطلق انواع حلال میشه این سنی میشه همون اطلاق مقامی لحظ نیست یه نوع اطلاق سیاقیه یه نوع قرینه سیاقیه یا به عباد دیگر قرینه حالیه مثل این ماله یعنی شارع گفت که این اسیر پاک میشه اطلاق داره این حکم ایشان از اون دید بغض اشتناب بکنید یا نه این اطلاق اصطلاحی نیست چون اطلاق اصطلاحی به خود اسیر جاری میشه این راجبه یه چیز دیگریه نراجع به اسیر میگن چون در مقام بیانه و عادهن هم شارع میدونه این یعنی اگر نجس باشه اگر براش ده اسیر پاک باشه خب اون بالا نجس باشه باید بیان بکنه که چیزی انتقاد نداره خارجه در باب پشم و این جو چیززان به اصللا مقامی به اصطلاح ما یا به ملازمه یا به تویت اونجا تاسیم. حالا این راجه به اونها ها به روایت اون روایتی داشتند که دباغ باغ ااحهااب ما ما دو به فقط تهور یکی این داشتن یکی لا تنت ون می به ااحهاون ولا عصب داشتن. یکی یک از روایت هلن تفعتون به ها هلن تفعتون به جلده ها دید یا رسول الله این ها میتتون قاله انما حرم ها یا لحمها ها پس روایات اونها متعارض بود نبید من یک بحثی رو انجام برم ارز کم چون این نافه در این مسئله تا و حل تا در این روایات اگر دقیق بفرمایید اهل سنت اون راهایی رو که بعد از علمای اخیر ما رفتن نرفتن مثلا الان اده از علمای ما قائلن که ما روایاتی داریم بر ترجیح مثل روایاتو امارم نه مثلا چند تا مرگه در از شده اول ترجیح به شهرن بعد ترجیح به معافرت کتاب اله اله بعد مخالفت آمه آخرشن توقع اهل سنت این مسئله مثلا ترجیح به شهرت ندارن مطلب ندارن چرا حالا ما چرا دارین چون نظری ما دارین چون ادعا اینه رو من خودم قبول ندارم بحث رو در بحث تعرض و تعرض شدیم ادعای اینه که ما تعصب داریم به ترجیح به شما روایت دارین از امام صادق سوال کرده امام بن که روا از شما مختلفه حضرت تنها خود مشترع بین اعصاب و داعی شاذنما اول گفته ما یری هر ناسقات اس اونی که سقاط نه هر ما سقاط کو خون ولا شر و ده شاذر مادو بعد گفت این کانل حکمان مشوره ای نه اول وثاقت نداری حدیث اول همین ترجیح به شهرت ما چون ترجیح به شهرت رو داریم به عنوان مرجحه شده اهل سنت ندارم حالا خوب دقت بفرمایید من چند دفعه دیگه عرض کردم یک نکته است که خیلی اون زاویه بحث ما رو با اهل سنت در بحث تعارض جدا میکنه این نکته مهمیه اون نکته مهمیه که اهل سنت در تمام کتب حدیثی خودشون و کتب اصولی خودشون یک روایت در باره حل تا از رسول الله مغلق نکرده خیلی نکته قابل فراجوهیه در کتب اهل سنت مثلا به پیغمبر اکرم از شده یا رسول الله دو تا رواد از شده رسید چه کار بکنید پیغمبر فهمه باشید مثلا اونی که موافق با کتاب بگید. مثلا البته ترجیه به موافقت کتاب دانا برای این موافقت مرجهه ازده خب حالا که موافقت کتاب جزو مقدمات و حجیته نه جزو حالا من دارد اون بحث نشه جزو مقدمات و یا جزو مرجهات بین اه در حجت اینه از پیغمبر اکم خوب دقت بکنید هیچ روایتی ما نداریم در مسادر اهل سنت اصلا این مطلب تعارض البته ما در روایت ما آمده این اشتباه نشه تو روایات ما آمده که قبولیش هم خیلی مشکل حالا من نمخابرد اون بحث بشم که در اونجا پیغمبر کتاب رو بگیریم این مضمون در کل روایات اهل سنت نیامده مرسلا در بعضی از کتاب متاخرشون آمده مرسلا و اما مصندن و به حیث این که در باب ترجیح به این رجوع بکنن در باب تعارض آرز و ولذا باب تعارضی رو که اهل سنت نوشتن همه رو با قواعد و عقلاوی حل کردن اشتباه این ظرافت کار رو دقت بکنید اولا مشهور بین اهل سنت قطعاً حجیت خبره بلا اشکالی کما اینکه مشهور بین خودهای شیعه مخصوصاً بغدادی‌ها عدم حجیت خبره و این عدم حجیت خبر مکتب سائد و اندیشه سائد و رائلی در شیعه بود تا زمان شیخ مفید و سید مرتضی شیخ توسی یک مقداری تریه داد و بعد از شیخ توسی هم بزرگان متکلمین ما تا مثل ابن زهره و سام مجمل بیان و قصب رابطی در آیات الاحکامش و دیگران اینها همه واقعا هستن به عدم حجید خواهد لکه انصافا از زمان شیخ توسی بحث حجی مطرح میشه و عوج این بحث زبان علامه است از زمان علامه دیگه تقریبا حجیت توی جامعه شیعه راه میفته یعنی امر متعارف میشه بقوله امون جزه استاندارهای علمی که از زمان علامه ببند و الا قبل از ایشان معروف به این عدم حجیت بود دقیقه بکنه هر کسی که قائل شد به حجیت خبر قائدتا در مورد تارز باید دنبال ترجیح قائدتا دیگه چرا؟ چون هر دو طرف حجتا تعب بودن عمل می دو تو متعارضم نمیشه شکن ترجیه اهد ما بلا مرجعه هم که درست نیست پس اگر ما رجعه هست قبول می باز بر اینکه این مطلب روشنتر بشه من یک مقدمه قبل از این مطلب من یک مطلبی عرض می کنم تا با مقارنه این مطلب مطلب ما روشند بشه من عرض کردم الان اجبالاً خدمتون که اهل سنت در باب ترجیح روایت ندارن معروف از مسئله که جنان ترجیه تون قالب و جهت حالا اکتورف الاشراب ازدادها بشه نقل بکنم تا معلوم بشه مراد من در اونجا چیه به نسبه که الان محل کار شماست و من سابقا هم توضیح دادم. این مطلب خیلی مهمه ما مجبوریم هی تکرارش بکنیم هست کردیم از قدمای، های اصحاب ما الا در باب تا آرز چهار مسلک مهم است. این روحوز مزالیه. جو مسلک اول مسلک تره و اون این که اگر دو تا رواست داشتید روی بعضی شواهدی که حالا جاش نیست یکی رو قبول میکنی که یکی رو ترخ میکنی یعنی به عبارت دیگر در حقیقت یکیش حجت هست یکیش حجت نیست این مسئله تر همون مسلکی بوده که معظم بغدادی ها قاید مسلک دوبان مسلک تخییره که از ظاهر عبارت کلینی در میان که اگر دو تا تایف رواست داشتید مخی روسه مسائل فرض کنید مسلک سوم مسلک جمع است الجمع مهما امکن اولا بناثر یک جوری این دو تا متضاد رو به اینجور جابش می‌بونیم ولو به نظر عرفی هم جمع نشه این مسلک شیخه به ایده هم بعد از شیعه بلاغه نهایی‌ها در ایده از موارد جمع میکنن البته الان در اصول اینطور شده گفتن جمع جمع مقبول داریم مثل حمل عام بر خاص حمل مطلق بر و بقیه هم جمع غیر مقبول این ها جمع مقبولش هست یا نیست اون بحث دیگه است که در تعارض با گفتنش مسلک چهارم مسلک ترجیحه این مسلک ترجیح در طائفه بعد از حجیت خبر را اومسا چون هر کسی که قائل به حجیت بشه غالبا باید رو مسلک ترجیح اما کسانی که قائل به خبر نیستن اصلا تعارض پیش اونها معنا پیدا نمی‌کنه خوب دقت بکنید چون بنابر مسئله قدم حجیت، اون این مسئله میره اون خبری که ما بهش وصول پیدا بکنیم حجته. خب دو تا وصول که پیدا نمیشه. و لزوما من رو ارث کردم، مسئله تعارض که الان علمای ما حتی مثل مرحوم سید یعقوبی صاحب اردیشون کتاب و اصولی شده تعارضشون با تعارض ترجیح داره. شاپ شده، شاپا منم دارم از ایشون. ایشون یک تعادل داره مرحوم سید کاظم یعقوبی. یک جلد مثلا کتاب در تعادل نوشتن. الان علماء ما انصافاً خیلی طولانی صحبت کردن شاید بعضی از بحث تاروز دو جلد یا سه جلد بشه مثلا اما مرحوم سید مرتضی یک صفحه از این چاپتا جهدی در تاروز هم نمیشته. در ذریعه اشون یک صفحه هم نمیشته تن شیستت نمیشته نمیشته تاروز فرح جد ما تو قاعد خبر نیسته او تاروز هم نیمونتظیه. راست هم میگه حق با ایشان چون در تا در بحث مبنا کردن و حجت ما باید وصول پیدا بکنیم ممکنه در یک مثلی چهار تا خبر باشه 5 تا بشه نه اینکه تا دو تا بشه 5 تا خبر متعارض باشه ما باید بگردیم به شواهد وصول به 1 تا پیدا کنیم سعی وصول به 1 تا هم حجت بغیر حجت نیست پس کی تعارض مثلا خوب دقت بکنیم تعارض اصلش مغنیس بر حجیت خبر تعبدن اگر حجیت تبرم قبول نکردیم، تعارض مثلا نیست ترجیح هم اصلش همونه و نزا مسلک تر هم با ترجیح رو من دو تا قرار دادم. با یکی نتیجه‌ش یکیه با یکی شاید حواظ به پرده چون در مسلک تر هم یک سازه رو قبول می‌کنه تر می‌کنه خب در ترجیح هم, هم این میکنه. می‌کنه وقتی دو تا شد یکی رو ترجیح می‌ده اون رو قبول می‌کنه غیر مرجع رو طرح می‌کنه شاید این سوال باز اون پیش بره خب چه فرقی از مسلک تر و ترجیح ترش اینه در مسلک تر اصلا تعارض نمی‌بینه می‌گه این تائده حجت اونی که حجت میدونه اما در مسئله ترجیح هر دو رو حجت میدونه و چون نمیتونه ترجیح بلا ما اگه مرجحی نباشه درست نیست و شمول عدله حجیت شامل متعارضه نمیشه لذا هم میارن به ترجیح اگه ترجیه باشه رو عقص میکنن به قطع این مسالک رو در باب حجیت کاملا در ذهن مارتون باشه حالا در فقه شیعه، در حدیث شیعه ما ادهی از روایات داریم که از امام صادق سوال می دو تا خبر متعارض از شما اما در سنیه ها نداریم این هم خیلی عجیبه ما الان در کتب اهل سنت اطلاقا یک دانه حدیث که از پیغمبر سوال کرده سن به تا آرز نداریم و لذا اون که در کتور احل سنت در بحث تا عرض آمده همش مبنیسته اولا بر حجت خبر تعبوده هم خود اگر تا آروزی پیدا شد یا اثبات میکنی یک تعبود حجت هست یک تعبود حجت نیست مثلا زعب داره اضطراب داره چی داره یا اگر هر دو شد در میگذن غالبا به ترجیح و چون معتقل این ترجیحات اغلاییست محدودیت عددی نداره ترجیحات ما چ در مسائلات ابن حجر او ابن حجر سه تا چهار تاست و لذا اصولین متأخر ما این مسئله رو مطرح کردم خدوا ندارن که آیا تعدی از ترجیح مرجحات منصوصه بکنیم؟ یا نکنیم ادعی از علما میگن از ت... مرجحات منصوصه میشه تعدی کرد حالا معیارش چیه علاوه مجرد وجود مرجع یا معیار های دیگه بحثش شما مفصلا در بحث تراز در کردی نمیخوام اینجا اما اهل سنت محدودیت ندارن مثلا در کتاب عامدی اگر خدمت اون باشه احکام آمدی هشتاد هشتاد و پنج تا مرجع ذکر کرده کسرت عدد و عدم استعمد اصحییت سنده همچون حساب بکنه بیگه کسرت عمل اشهریت همچون حدود هشتاد و خورده مرجع رو پشت سر هم کرده مرجع به لحاظه سند مرجع به لحاظه مرجع به لحاظه جاده خارجی تمام اینا تقسیم بندی کرده هر مرجعی هم چند فرد. یعنی چند باز ف و این نکته به نظر من خیلی قابل توجهه و اون این که اگر ما یعنی معلومش اینه اهل سنت مخوام بگن اگر ما تا در حدیث رسول الله دیدیم این باید یک جوری حل بشه تا مال بعد رسول الله هست. و الا اگر زمان رسول الله بود از خدا را چیز سآل میکنم؟ ولی زا ما ارز کردیم فارق بین تو آرزه در روایات ما در اهل سنت روایات ما از امام سوال شده و امام جواب دارید که چه کار بکنید خود جواب امام که چه کار بکنید امام تعیید میکنه که روایت ما متعارض خوب دار بکنید خود این که امام جواب می‌ده که ببینید کدام موافق با سنیه این معناش که خود امام میدونه که متعارض حبا کرده و احلا ممکن بوده ما بگاه بی خود من یکی بیشتر دوم دو همین سه همین باقیده این رو ما روش تمراسی مترکل در بحث تاروز که حالا من مفتاح شرط کردم توش فکر بکنیم اینی که خود امان قبول داره تاروز رو این معناش چیه؟ معناش اینی که تاروز مال ما نیست این نیست که در روایات ما و در نسخه ها و کتاب ها خود امان قبول بکنه ها اثباتی صرف نیست اما در اهل سنت اینطور نیست این خیلی نکته که میشه راه اون لحظه من در بحث 4 روز عرض کردم که از بهترین که ما واقعا در کل دنیای اسلام بازوش حساب بکنی روایات کتاب سلیمی نه قیس آمده از امیرالمومنین که بگه چه روایات از رسول الله مختلفه خب امیرالمومنین سلام این کلام به رسول حد حداقل فصل مثلا سی سال 25 سال 20 سال بعد از وفات رسول الله فرموده باشه. این نشون میده که با گذشت یه ده بیس سالی سی سالی فقط سی سال دیگه از رفاعتن از تعارض شروع شده این روایت هم نشون میده که از زمان علی نبی عبی طالب تعارض شروع شد وقت در این روایت هم علی نبی عبی طالب از این راه هایی که ما الان متعارف ما در اصوله کدام اصحه سندنه کدام مشوره از این راه ها پیش مرفتنه از گفتن که پیغمبر تعارض نبوده، بیشتر برونه برواش. یک طایفه از هوا دروغ میگفتن، اصلا دروغویی بوده، که اله شده. یک طایفه ناصح گرفتن منسوخ گوش نکردن، منسوخ گرفتن ناصحی بود نه و بعد اشاره ای به خودشون، و کسایی بودن که اونها خودیشونه. کسی بود که همیشه با رسول الله بود، شب روز، اگر م... مشکل بود از رسول میپرسید و گاهی هم بود شو بدون اینکه بپرسه خود رسول مطلب رو اشاره به نفس خودش نه یعنی نه اگر میخواین درست احکام و سنت رسول و دوست فهمیده بشه باید فقط به من مراجعه کنین که بگم برای شما کدومی که مقدم بوده که رو بهتر از از این عبارت امیر و امان الله علیه معلوم میشه که بحث ترجیح ها اکثر سندن و اکثر در قول کلامی تار اینا هیچ کدوم اساس نداره روشن شد این کبرایت اشماله حالا برگردیم به ما نحنفی اگر دقت بکنید اهل سنت در و همین برخورد رو من تمام مقدمات رو درک کردم در نتیجه یک عده‌ای از اهل سنت این روایت لا تنتفع من المیتة به اهاب ولا عصب رو چون آخرین حدیث پیغمبر با امر ناسخ گرفتن چون در خود روایت داره که قبل موتی به شهر او شهری عده مثل احمد بن از کرده اینا قائل شدن که لا ينتفع من به شی ابدا پس پیغمبر اول اجازه دادند به پوست میته با دباغ یا بدون دباغ و درباغي یا بدون درباغي استفاده بشه بحثا نا لاتن او این رأی این آقایانه که این راه رو پیش رسونن یه دم از آغایان این مسئله مطرح کردن که این روایت عبدالله بن اوکی داره سندن و متناً اصلا ارسال هم داره معلوم نیست کی شانس در کرده رسول الله معلوم نیست چی باشه خب وقتی این به طرح شد میمونن اون دو تا میمونم اون دو دارو یک ابتدایشون قائل شدن به اینکه اون روایتی که فرمون الله انتفعتم به احابه ها به جده ها این اطلاق داره چه دباقی شده باشه یا باشه. و وقت با اون روایتی که میگه دباقل به اصطلاح احاب به اصطلاح طهورهو یا دباقل عدیم اون روایت رو یا حمل بکنید بر مثل سبا حیوانات که اصلا اسان قابل تسکیه نیستن. یا اون رو هر دکویی بر تنزو یعنی جلد میته پاک هست میشه ازش انتفاق بور ولی بهتری بهترین که دباقی بشه. این رای مثل زهری و بخاری اینها که میگن به جلد میته مطلقاً میشه انتفاق که. ادعا معتبر نه. اون رواج دیم میگه اعلا انتفاط هم به جلد ها این دوالت که میگه دباقو تو دباق ال عظیم تهولو قابل جمعه. یعنی علم قطعتون به جلده ها به دبقه ها با دباقی نه مطلقه ها ولی از به این نه جمع کرد پس مشکل رو اهل سنت ببینید بدون این که احتیاج به این راه های ما خود به مشتر بین اصحابه مشکل بین این روایت و رو فقاه اهل سنت چچک جمع کردن روایت ایما احاب دوبغه یا ادا دوبغال احاب فقط تحور قبول شده ها. اون روایت است که صوده و, و درعوانم به صوده یا قصه میمون رو شات میمون رو قبول کردم این قصه عبدالله بن ام اوکینوال ادعایشون قبول کردن ادعایشون قبول نکردم و لذا این نتایج البته من فعلا رؤوس مبانی رو ارشد کردم درست نخوندیم دیگه در کتاب مجموعه نووی شرح مفصل هفت مذهل رو داده من فعلا نمیخواستم تو شرح وارد بشن هدف من یک نکته بود اون این بود که ببینید در اینجا آقایان بدون اینکه که برگردیم به یک ترجیح معین تا را آرود رو از راه دیگر یه حل کرده. یعنی از راه یک مسئله اصولی با هو حجیت هستون خبر تعبوده این خبر حجی اون خبر حجی هست و جمع دلالی هم ممکن اون میگه حلن بهها از عن روایت میگه اگه دباغ بشه پاک میشه فجمعش میکنه یعنی شما چرا چه روی گوسه درانداختید پوستش رو بکنید بعد دباغي کنه استفاده بکنید اما مثلا زهری اعتماد داره نه چه رسول بفرمون ان ما حرم اكلها یعنی بدون دباغی هم پاکه این دیگه حالا بحث سر اینه میشه که آیا قابل تغییره یا نرفتن دنبال این بحثایی که ما میگین مثلا مشهور چیه فتاوا بچیه خصوصیات چیه دنبال این بحث ها رو اونا پیش نرفتن چرا چون مرجحات منصوصه نداره اون جایی که با تقدم و تأخر زمانی و نسخ قابل جمع جرم میکنن اون جایی که حمل مطلق بر مقید قابل جمع جرم میکنن دقت فرمایید اون جایی که خبر حجت نیست الغا اشونده به اصول عقلی در این یک بحث ان شاءالله اونجا هم نافع در کیفیت برخورده در اهل شما، و اما برگردیم به بحث خودمون این به اصطلاح در ذهن وارتون باشه که جاهایی مفعده بده در میکنه شیخ توسی هم هم همین کار و هم مسئله شهرت رو تا یک حدی مرحوم شیخ توسی در کتابهای فقه مقارنش مثل خلاف که واحدی نداره یعنی متعارض تلماتی ایشان مثلا یک جا در شکل در جزید و شهرتیت برایت جاری میکنه یک جا مثلا احتیار کرده اشتغال قاعده اشتغال عبارات ایشان در اونجا که ترضیم داره در خود مثل حتی کتاب اه... کتاب اصلاح تهذیب هم همینطوره مثلا بعضی شان ده مورد ایشان به مرسله ابن نبی آمین روایت تمسط می یا دیگه برای برای برای ابن و... بعضی سه مورد در تحضیم میگه و اول مافر خواهیم که مرسله وضوح نداره نصافا نمیدون ما از کردیم در باب میته سه تا بحث غیر از حکمی هست. یکیش میته مالا نفس سالت له یکیش مسئله اعزار که تول یه حیات این بحث های یه نقدارش هم بحث حکمیز یهجز به آ جزو جز انتفالای ما اول یکی دو نقدار از بحثای های موضوعیشه بخونیم اول بحث مالا نفس لهو ساائله. من دیوز ضرروات دیگه رو شروع کردم. اما امروز حالا فیلن این روایت رو میخونیم که دیروز هم روایت شبیه هر بود حالا در, در. در. در کتاب وسائل به حسب این چاپ جدید آلون اهل ایرامالله آل آی جلد سرمان صفحه چهارسل باب سی و در اون چاپ قدیم آخر جلد و باب سی و از عباب نجاست بابی رو ایشان منعقد کردن با عنوان تهارت و میتون مالی صلاح و و سائله از کدر در کتب لغوی اینجا نفس رو معنی خون گرفتن و در لسان اولا نرمی کنه نفس یعنی خون نفس در لغت عربی مشابهش در فارسی جانه جان هم مجردات جزو مادیات نیست که خون باشه او اصلا سیلان نداره حالی توضیح من بعد ازش. حدیث اول رو که از باب نهارو کردن نیشون از مرحوم شیخ توسی محمد حسن عمل مفید استاد ایشان سابقا یه از سرم مرحوم مفید یه اجازه آم به مرحوم شیخ داده از این اجازه در فهره زیاد استفاده کرد در کتاب به اصطلاح تحزیل از سرم تحزیل رو که مرحوم شیخ نوشتن تقریبا جلد اول از چاپ جدید و مقدار زیادی از جلده و ا مثلا شیخ مفید است که از استاد ما اسد و اسد است که تا حسین سعید 86 تا واسطه بود درست در فاجر این تکراره و سنگینه برای مطلع بعضها به منشوری که علی حسین سعید افتابه نام او بكنند گویا در یک مقدار از کتاب اسم سند کامل آمده در مقدارش نه میشه شاء من یک هم باز یک جاهایی که کار اثر داره از اینها اینجوری خیلی اثر نه. محمد بن حسن مرحوم شیخ طوسی عن المفی استادی شریعہ صدوق عن محمد بن الحسن مراد از محمد بن حسن در اینجا ابن ولید استاد شیخ صدوق محمد بن حسن احمد بن ولید خوری که از, بزرگانه ان از لاز بزرگان است عن احمد بن ادریس احمد بن ادریس از اشعارری قمی و از بزرگان و اجلاء قمی بسیار بزرگوار احمد بن ادریس عن محمد بن احمد بن یحیی قرارا نعرض کردین که مرحوم محمده نحمده نیه کتابی درشون ها نوادر حکمه اینه تازیه هم چون نگلتن باید تکرار بکنم چون تکرارش مفیده اون که ما داریم در معلفات اصحاب ما همه اسمش نوادره هم نوادر گاهی هم نجاشی بعضیان نیاشه لهو کتاب ان نوادر با الفلام لهو کتاب نوادر بدون الفلام حالا اون بحثش در خودش تنها یک کتاب داریم که اسمش نباد را الهکمن است همین کتابه. اول هم و بعدیه دومباره نداره ام نبادیم. این کتاب از کردن خودش دو هزار تا دو هزار خورده یه حدیث داشته بسیار کتاب معروف بود در قوم. بسیار کتاب جا افتاده بوده. و شوخی هم قوی نوشتهن دبی شهید ما میگیم گای دبی شهید. شهید بقالی بود در کم دبی شهید پسکوچی بوده همه چی احساس داره می‌ماده. اینا شوخی گرنه که این کتاب همه چی داره داره مثل مثه کشکوی مانگی بس. ولی مثل مثل چی عطار ها مثل اون عطار باشه. امام محمد بن احمد بن یحیی خوب خود دفتر باشه اون چیزی که ما روایت داریم که منتهی میشه به محمد بن احمد یا اول سند شیخ طوسی هست محمد بن احمد این از همین کتاب نداول حکمت یعنی ایشان کتاب دیگری نداره. مرحوم چی کتاب دیگری نداره همین کتاب و مخصوصا اون مقدار از کتاب رو که ابن الولید نقل کرده خیلی ارزش داره هم ابن الولید نقل کرده و البته کتاب در اون زمان هم مثل زمان ما مصادر داشتن اینطور نبود که حالا همش روایت شفهی باشه یه مقدار ما الان روایت داریم در کتاب تهذیب، بیشترش در تهذیب، کمش در کافی هست در تهذیب بیشتره سند دائما مکرر میشه به اینه بو سلامینان احمد ابن الحسن این پسر ابن فضل معروفه احمد اینم فتحی ان عمرو ابن سعید مدائنی اینم فتحی ان مصدق ابن صادر مدائنی اینم فتحی ان عمار صوابی اکر فتحیه لذا مثلا مرحوم قیصری در کتاب وافی میگه ان محمد ابن احمد، ان فتحی عن صالح این معروفه به صادر فتحیه صادر فتحیه چی میگه اینه چون این به عین تکرار میشه و در کتاب تحذیب این زیاد آمده و تاریخا هم انت کردم امار ابن موسای ساباتی که از همین مدائن که نزدیک بغداد سلمان شلمان صابات سابات در... چیز در اسم قبل از اسلام چون قبل از اسلام این بغداد یا مدائن پایتخت ایران بود بعدها دیگه پایتخت ایرام شده سرفیرن در ساب مدائن میگوند چون از 5 تا شهر تشکیل شده بود تیسمون به اسطلاف یکیش چی بسواباد بسواباد آباد آباد ها چی اسمی داره دیگه بس؟ اون رو عرب ها تعریف کردن ساباد ساباد تعریف یک کلمه دیگه است ها خود فارسی ساباد نیست تعریف شد بسواباد دیدم همینش ها مثلا چند مافیش دارمون یادم اصلا چیزا ما نیست سواباد نمیدونم بسواباد دیگه ای چی اینجوری حالا وی سواباد هم چی مثلا نگاه میکنم ولی در... هر در کتاب در شده این درضا تفصیل شد یعنی تعریف شد بسواباد و یک احتمال هم هست ما چون الان دقیقا نمیدونیم این منطقه شاید مثلا رویش فارسی زبان داشته به هر حال روایات امار ساباتی مشکل تعبیر عربی داره یه عربیش واضح نیست راجع به روایات امار ساباتی من یه وقتی گرم بحث گردم اینشالله بعد هم جایی که مؤثر ویسایی شبیدیر بحثه خودمون این سالا اونجا مطرح میکنه یه مقدار روایات ایشان شده ازش. و نسبت ایراد در روایات عمار صاباتی خیلی بالاست. خیلی. یعنی اگر ما الان روایات عمار رو جمع بکنیم، چیزی بالای حدود 70 تا 70 تا 80 درصدش ایراد شده. به هم اشاره آقا من روایات امار المعروف به شذوز راسته. الان نسبت شذوز در روایات عمار صاباتی فوق العاده بالا فوق العاده بالاییست روایاتیست که بهش عمل نکردن ما سری کردیم بعضی از روایاتی که کاملا شازده و کاملا عجیبه هست توجیح بکنیم و اگه توجیح درست شد شد نشدن که یه علم دا علمه هایل یه مقدارش ما دیده که به نظر مایشون عربیت خیلی کامل نبوده این چیزی جا نمی افته برای ایشان و داریم هم. یا حالا درست نمی یا مثلا دهن تصرف می‌کرد یه روایت داریم که محمد مصیب به امام صادق ع آل از نماز ثوابتی را با ان در اول جمیث سوم شافعی قدیم رسائل هست حال ما هیه اون تو رواه انک قوی الفری النافله فریزه از نافله خیلی حرف عجیبیه نماز مستحبی واجبه ففجعوا به من نگفتن چرا من بهش گفتن که اگر انسان در نماز مثلا نماز نافل رو بخونه در نماز خللی باشه کم و زیادی باشه با او جبران میشه ببین این ذهنیت رو در معنای حدیث به حالا که جبران میشه فرض واجب بشه میشه. میشه جبران میشه جابر و مجبور از سن خندیه باشه و اینا مسیمه که انسان دستش درو پارچه بده خب پاتچی روز دست سالا نمیشه که اما پس یه تیکه گوش برداشت میشه یه گوش بهش مثلا جراحی بکنن جو او میشه این کلمه جبران یه احتمالی نه، احتمال, احتمال دیگه هم داره که معنی مخال نواظرش بشه، چیزی بنویسینش هر درک جای خودش. فرقی از این که ایشان ظاهرا از همون زمان امام صادق هم یک خرابی در فهم داشته، حالا چی بوده؟ تعبیر خراب بوده، چی بوده؟ نقطش باید بعد درسی بشه. من خود من یک اعتقاد دیگه هم پیدا کردم، غیر از قابل اشکالاتی که شذوذ، من به ذهن من عرض کردم چون اون کتاب پیش ما نیست. اگر نشده تحمل نشده از مشایخ به نرسیده اونی که به ذهن خود این فرد ما اشکال نکنه اجتهاد شخصی خودمون. الله گفت و توبنن توغن المعی از واز حدس و گمان های اهل خبر رو فرض قبول به ذهن میاد که کتاب عمار صواباتی که به عنوان کتاب اساسی فقهی در فقه بوده مثل دائم الاسلام پیش ما الان نه در اون زمان پیش ما کتاب اساسی اسماعیلی ها در فقه. خوب رو این مطلب دقت بکنید من الان شواهدش اینجا نمیگم چون درست طولانی میخواد سید طولانی میخواد چون یک حدیثشی بخوام شردن خودش یک درس طولی میشه وکن الان من فقط عرض میکنم اونه که به ذهن خود من رسیده این کتاب در فقهی مثل فخیل در ماز. الان خود کتاب ملده هزاره روایات داره یک جهان فتح خود در فهم اون عبارات اخلافه مثلا سال و سال یکی, یکی رو حدیث قرار داده ادبه گفته این حدیث نیست این زید حدیثه این کلام صدوقه ما به ذهن میاد میاده همین مشکل در کتاب امار ساباتی هست به قطع همین مشکل در کتاب امار ساباتی هست الان گاهی روایت از امار است به نظر ما اون زید روایت نیست حالا منشأ اشتباه چی شده؟ اولا در کتاب بوده مرحوم محمد ابن احمد ابن یهیاد صحابه نوادالهکمه زبیشدی مرد بسیار بزرگ سره جلیب و قدر عظیم و شن که حیدی حدیث شناس نبوده اشتباه کرده اون فتوا رو مندمج کرده در روایه هم مرحوم شیخ خصوصیت بیده کار جدی نکرده درست از کتاب نوادالهکمه برداشه اومده مطمی که در نوادال حکم بوده نقل کرده دیگه ایشان هم مخصوصا چون غاره به حدیث خواهر تأبدی شد نه آمده که ایشان بگیه یه که روایت این دیگه ایسا روایت مید و به اصطلاح آقایان اهل حدیث الان اصطلاح میان مدرج. مدرج حدیث مدرج حدیث مدرج حدیثی که کلام راوی در ضمن حدیث جمع شده باشه این. به نظر ما الان متاسفانه این کتاب امار ساباتی همه از میک از مشاهده من هفید شد. ولی وقتی جمع بکنیم البته اگر چند نفر از آیند واقعا یک نفر کار سختیه. و این اگر جمع بشه خیلی فواید داره. چون مثلا یک شوزوزه هفتاد درصدی خیلی بالا شوزوزه هفتاد درصدی. دیگر هفتاد تا هشتاد درصد رویشون امن بشن شده. خیلی هست اولی مهمیه که با دوش خیلی کار کرد. این شوزوزه بالا رو جد با تحریب و بررسی نمیشه که الان هم مقدار زیادی است که تاگه امبار ساقطی به اختیار ما هست مؤذم او هم با همین سند سنده رسیده به غیرین هم رسیده ها اما مؤذمش با همه با این سندی که الان اینجه با اون هم کتاب شیخ یعنی شیخ ورده برده عده از اینها هم از منفردات شیخه نه کلینی اونها رو ورده نه صدوق اونها رو برده گفت کرد بر ببین با اینکه که نواده بیشون هم بوده این مال همونش تو زوز ادیش البته مرحوم شیخ در این مورد به ذات اگر خواستم خواسن مراجعه بکنن در این مورد به ذات در جای دیگه من ندیدم من ندیدم حالا باشه در جای دیگه من ندیدم اما در مورد همین خبری که امروز ظالم بخوام بخورم که در باد می که هست مرحوم شیخ قدس الله نفسه این تنها ای است که من دیدم میدونم یا ندارم بخواد نفی نکنم استیعاب نکردم تنهاجیه است که مرحوم شیخ تقریبا متن گنده‌ای رو متن فراوانی رو از ما در بابه عقیقا داریم متن نسبتاً طولانی از نسبتاً طولانی اما به این مقدار سوال و جواب ندیدم جای دیگه در کتاب تهذیب مرحوم شیخ جلد اول صفحه 284 ایشون در اینجا خوب دقت کنید تمام سند رو نآورده اونی که تمام سند جای دیگه هست این در اینجا اول سند محمد بن احمد بن یحیی انا احمد بن یحیی این اشتباهه احمد بن يحيى اشتباهه غلط انا احمد بن الحسن اين درس انا عمرو بن سعيد عن مصداقه مصادر عمر ساووتي نبي عبد الله در اینجا حدود یک صفحه را از این کتاب آورده ان و به این صورت عن الكوز اول عنايتون اخر دران کی بیوخت این هم اصحاب به فتوای نداده از معاصر امام موسی سیستانی اخذ وجوهی کرده من دیگه فتواشو موزدارن خیلی هم برگیسی این که مثلا خصوص انا واسه سه مرتبه انا یعنی اونی که ظرف نوشیدنی، ظرف آبخوری به اصلا نه مثل سینی، سینی جز انا سه مرتبه این فقط در روایت امار ساباتیه اصلا سا هم داره احباب کرده توضیح روایت تو کتاب تهارت گفتیم جاش اینجا نیست قاله ته امکانه بله و سوئل امار شربت منهد سوئل اما ام این یشتا بومن ها بازون او او و سقرون او اقابون و سوئل قال اقسل انا ایلی توسیب و فیه جرز میتن سوئل انده اره همجور سوال و جوابه این مورد من تا حالا نایدم در کتاب مرحوم شیخ حدود یک سفقی زاره دیگه متن کتاب خود متن کتاب اممال ثاباتیه وقت این سؤال اخیرش و سؤال عن الخنفسا خنفسای خنفسا که سوسک باشه و زباب که مگس باشه جرات ملخ باشه و نملم که به ایسا مورچه باشه و ما اشبه دالک تموت و فلبع و زید نوان زیتون و سمن روغن و شبهی و مانند اونها فقال کل ما لیس لهو دمون فلا بر دقیقا. البته همین مصر رو ایشون در صفحه در همین کتاب صفحه دیویست و هم اوورده خود مرحوم شیف مرحوم صاحب وسائل صاحب... از اینجا هم نهاره کرده. اشتب... کرده اشتباه نشه در صفحه بله در صفحه دیویست و اینطور داره خوب دقت بکنی در صفحه دیویست ما اخبرانی از شیخ ایده الله مراد شیخ مفیده ان ابی جعفر محمد بن علي مراد صدوقه ان محمد بن حسن ابن الولیده ان احمد ابن الیز را اینجا صدق آمد زکرده در صفحه دیلیست و سی بخداره ان ابی عبدالله یه حدیث طویل این حدیث طویل حدیث که جا خودن برای شما مطمئن هیچ فرقی نداره فقط در آخرش داره کل مالی سلهودمون فلا بأس به من همیشه خیلی در ماتم داریم باشین این به اینجا آمده در اونجا آمده اونجا فلا باز است، اینجا اونجا فلا باز است به گردن، فرق داریه که؟ الله علیه و محمد و آنها صفاتش.